بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد ما هنوز با مرجعه هستیم شاید این یکی از آخرين مسئل وشاید هر چند مسئله استثناء منده بزن مسئله دیگر جنس عمله مسئله دیگه هم بازم مونده که خواهد اومد. عجله نمی کنید باستش. هم بحث نواقض ایمان. هم بحث جنس عمل و تارک سلا و تارک جنس عمل و خود عمل کلم به طور کلی. این مسئله انشاءالله بیشتر باز خواهیم کرد. لیکن ما اون چیزی که مد نظرمون در درست گذشته بود این بود که این آیات سریح، این عدله سریح از قرآن و سنت برکرد مرجب آنها چطوره؟ کتاب تفسیر رو می نمیسن، چطور تفسیر میکنن؟ کتاب فقه رو می نمیسن، این آیات ازا طولیت علیه من آیات رو زادت و این آیات رو چگونه تکتیر میکنن کنن؟ چگونه تعویلش می حالا تعویل که هیچ تحریف خب پس موقف مرجعه در قبال نصوصی که درش زیادت ایمان اومده اولا حالا من سه چهار تا شبهشون خلاصش میکنم هرچند که شبهاتشون حالا زیاد که نیت منشیش تا بیشتر نیتونی که من به این چند تا شبهه اصلیشون که حالا مدار اصلی شبهاتشون روش هست فقط اشاره میکنم اولا گفتن که مسئله زیادت ایمان زیادت است گفتن که چی؟ زیادت ایمان حمله بر زیادت تشریه چطور حمله بر زیادت تشریه؟ گفتن نماز اول دراکت دراکت بود کم کم نماز افزوده شد شد چار رکت شد چرا شد دراکت علیکم سلام کم کم افزیده شد شرع کامل شد و خدا مندم می فرماین علیه و مکملت لکم دینکم امروز دین کامل شد تا جای که الان دین کامل شد پس زیادت ایمان زیادت تشریع هست این چیزی که در سرحق قاعد نصفیه صفحه 124 رو برده رد اولا زیادت و تکمیل در تربوده خداوند اليوم اکمل تو کامل کردم این کمال در تشریع در اون چیزی که ما بهش ایمان باید بیاریم در تشریعی که ما باید بهش ایمان بیاریم دین کامل شده. خود شخص، کجاست خود شخص در این آیه؟ خدا گفت که ما ایمان اشخاص را کامل کردیم یا اون چیزی که باید بهش ایمان بیارید را کامل کردیم؟ کدوم یک مسئله اون چیزی که باید بهش ایمان بیارید؟ دو با من آیا لازمه کمال دین سؤال، آیا لازمه ای کمال دین اینه که همه ما در عملمون به اون دین مصابی باشیم؟ آیا در انجام معمورات، اون چیزی که ما بهش عمر شدی مساوی هستیم؟ بر فرده. حج فرض شده بر همه ما فرضه، بر همه مکلقی. خب، الان من استطاعتش دارم میرم، شما استطاعتش ندارید، نمیرید. آیا منی ای که میرم منی که جهاد میکنم منی که مالم و میدم مثل کسی هستم که اصلا نمیره شرع کامله شرع کامله لیکن ما کسانی که شر رو عمل میکن نسبت ما به اون معموراتی که بهش دستی داده شدیم مختلف مساوی که نیستیم سوا من این که مشکلشون مشکل مروجه اصل اشکالشون بر به همون عید اولشون که عمل از ایمان نیست این بزرگترین اشکالشون که عمل وقتی به ایمان نداره ایمان هم کم و زیاد نمیشه و کسی که حالا حالا این مشکل درباره کسی کل عمل از ایمان نمیده لیکن مای که عمل را از ایمان میدونیم عمل وسیلهی برای زیادی ایمان میدونیم پیش ما هیچ اشکال نیست که هر کسی که عمل میکنه هر عاملی به اندازه عملش عجر و داده میشه خب شما مرجع چی میگید در روز قیامت؟ آیا شما میگید که مثلا بالفرق ما هممون مساوی هستیم یعنی همه در نظر خداون یک سانیمون نمیدونم محاسبه نمیشیم و یا مثلا به فرض حساب کتابی نیست فردوسی هم وجود نداره جواب هم اونجا چی؟ این یکی از مهمترین ردودی که میشه بر اونها داد خب شبهه بعدی این شبهه که واضحه شبهه دوم اینه که گفتن این زیادی این زیادت در این آیات مقصدش ثبات و دوام و مداومت برعمل یا بر ایمان و مقصد زیادی زیادی به مرور زمان و در اعراض و در اشخاص یعنی زیادی زیادی خود ایمان که نیست یعنی ایمان خود شخصت کامله یعنی کم و زیاد نمیشه مؤمنی زیاد میشن و گفتن که حالا تصدیق و همچنین اعمال کلا چون عرضه و عرض هم هیچ وقت باقی نمیمونه مگر با تجدید در اشخاص و در امثال حالا جواب اولاً ما باید حد دو شدهود رض را بدونیم شما گفتید مثلا ار و رض خوددن باقی نمیمونن مگر با تجدود و تجدید امسال روز و روز مؤمین این تر ب این زیادی زیادی اش ما مییم اولا رض یعنیچ رض درعلم منصق مجودی است که برای بقایش به موجود دیگری نیاز داره یعنی به یک محل دیگری نیاز داره که در اونجا زندگی بکنه یا در اونجا عمل بکنه مثل رنگ مثلا بالفرد دواز شاید خودش رنگ نداشته باشه همینجوری شاید یه همی رنگ مشکیش داشته باشه لیکن وقتی که تو آبش میدازیم حل میشه درسته؟ آب رو مشکی میکنه آیا این رنگی که ما در آبی می ریدیم یا در محلول دیگری حل می کنیم همونطور باقی می مونه و یکسان رنگ سبز و قرمز با هم فرقی نداره رنگ ها همه می یکسانند یا اینکه رنگ این رنگ که ما در آب می هر چقدر بیشتر بشه غلطتش بیشتر میشه رنگش بیشتر میشه عرض شما استدلال می کنید به عرض اینه که این ایمان تصدیق است پس تصدیق عرضه و اراده کم زیاد نمیشه ما میگیم نه همین عرضی که شما دارید میگید این ایمانی که دارید دیگه تصدیق شما میگید عرضه ما میگیم که چی ارض نیازی به جایی داره که در اون اراده بشه در اون عرضه بشه و اونجا مثل خودتون که مثال میذاریم مثل رنگی که احتیاج یک جت داره که در اونجا مثلا کارش انجام بده که در اونجا حل بشه یا در اونجا بالاخره رنگش پاشیده بشه رنگا رنگاویدی بشه پس با این تعریف عرض احتمال کم و زیادی داره یا نداره احتمال کم و زیادی داره ما چیزی که در طبیعت جدا برو همین رنگ شما در این مثال میزنید ما این رنگ میبینیم که غلطتش کم و زیاد میشه دوباره آیاتی که دلالت بر زیادی ایمان دارن طریحا در زیاد خود ایمان نه زیاد اشخاص و اعداد اونها مثلا آیه 124 توبه و ایده ما انزلت سورتون فمنهم من یقوله ایوکم زادته هذه به ایمانا ایوکم حالا ایمان شخصی اشخاص یا تداد اشخاص ایوکم هر یک شما کدام یک از شما این آیه و این ایمانش رو زیادتر کرد خب این هم شبه دوم شبه ایش دوم اله از جمعش رو گفتن که این زیاد و زیادی به معنای اشراق پرتوه نوره یعنی یک شخص ایمانش که تمو زیاد نمیشه بلکه قلبش نورانی تر میشه و مقصد از نورانی شدن قلب زیادت پاداششه زیادش زیادت عجرشه نه زیادت خود عمل عمل ثابته خود ایمان ایمان که در قلب هست ثابته زیادی روی سمراته نه روی خود اون ایمان جواب اولا این تأویلی از دلانت سریح به تأویلات بعید و دور و غیر منطقی چرا ما وقتی که میگیم این تعبیلات ما گفتیم صرف نص از ظاهر صحیح به تعبیلات بعید و دوره یعنی یک لفظ را یک سریح لفظ یک نص صریح را تعبیرش کردیم به یک معنای دور مثلا بلفرض وقتی که من میگم شیر و مد احتمال درکتی ذهنیش بیات این شیر شیر پاستوریزه است آی لَو د برای شیر پاستوریزه به کار برده میشه شاید احتمال بده شیر و اسم یک شخص شیر باشه لیکن احتمال غیر ممکن است که اینجا شیر پاستوریزه باشه شیر گاو یا شیر شتر باشه این تأمیل دوره، تأمیل بعید، غیر ممکن. چرا؟ چون سمرات ایمان، سمرات خود این ایمان، در داخل خود ایمانه یا در خارج خودش، من الان میشتم نماز بیکنم. می درسته؟ سمرش، سمرش چیه؟ پاداش و عجل در روز آخرت. درسته؟ این در خود ایمان بود، یا در عاقبتش، معالش در عاقبتش خارج از خود ایمانه سمره یک عمل خارج از خود یک عمله خارج از خود ایمانه و فکر نکنم عاقلی بگه که جزا و قاداش روی اطاعت و پاداشم خود اطاعت است کسی عاقل میاد میگه فلان عمل نماز عبادت است اطاعت است پاداش جان اطاعت است کسی عقل میگه اینا بده نه نماز طاعت است بیش از اکبر اجر است کسی میاد بگه اینم طاعت است کسی میاد بگه تاعته؟ نمیاد کسی بگه بلکه, بلکه هر شخص عاقلی میدونه که ثواب تاعت نیست ثواب بر تاعته امر خارج از تاعته ثواب خود تاعت نیست تاعت یه چیزی هست ثوابش یه چیزی دیگری که بعدن, بعدن خدا به ما میده امام ابو یعنا در معتمتی اصول دین صفحه 1829 و 19 چیلین میگه نگه ایمان ایمان و ييد و به الضاع وخصص به المضیه نفس هو و سووا ایمان میگه زیاد میشه با ساعت و کم میشه با گناه خودش و سوابش ایمان ناپ میشه گناهی انجام دادی هم ایمان ضعیف میشه و هم سوواب چی میشه کم میشه درسته گناه کار میشی حسنا تو برمی دارن دره به کسی دیگر میدم خلاص الم د في قولهم لا وله ی خصص لا سووا وره نفسه م ده گفتن نه سوابش کم بیشه و نودش ایمان ن خودودش نهابش ایمان یه چیزی هست نودش ن خودودش خود ایمان تکم میخوره نمازنت نماز و خصوص ت بیست سر اعت هزاره دقاعت این منکم زیاد نمیشه و نه نمی هم ثوابشه وقتی که را من عمل بکنم وقتی که من ثوابم کم و زیاد نمیشه چرا بیان مثل نماز بخونن به خاطر همینه که معتزله منقرض شدن حالا اساسیات و چیزهایی که سبب انقراض معتزله شدن چیزهای زیادیه مثلا یکی از مسائل می‌بینید که مثلا نماز نمی خونن شب با موسیقی بدیدین موسیقی به خواب نمیرن هم موقع مشکلی موسیقی و فلان نمیدونم عیش و این بحث معتدل وقتی که ایمان توی انسان بیماری باشه نماز خوندن در مسجد بدون معنی باشه نه ثواب کم و زیاد میشه و نه ایمان کم و زیاد میشه اصلا چرا عمل بکنه و خلاف الاشاریه فی قولهم یزيد و ينقص ثوابه لا نفسه اینا هم حالا که در رد اینها داشتیم داد رد بر اینها بود که اشعاری هم نوعی اتفاق دارن با مرجئه گفتن که ایمان کم میشه لیک ثوابش نه یعنی شما آمدید عمل بکنید یک عمل ایمان یعنی کاری انجام دادید قرآن رو بیش دادید ایمانتون زیاد نمیشه بلکه اون چیزی که زیاد میشه سبابتونه سباب آخرتتون در آخرت قرآن خود پاداش بیشتری خواهد گرفت لیکن در دنیا کیچه ندارید ایمانت نه به خدا قوی تر میشه و نه به خدا تر میشه میگه باید ددالت بررد بر, بر اینها فرمودی خدامنم را چند تا آیت ذکر می کنه از جمله ویده طولیت علیه مایاته زادت هم ایمان این سریخه در اینکه خود ایمان اشخاص زیاد میشن شن نه ثواب و نه همی بلکه خود ایمان وقتی که در نصوص اومده باشه خود ایمان کم و زیاد ما وقتی که در نصوص نگاه میکنیم کنیم می که اشخاص be etebare imanashun tafazul peda mikonan hich kudo az yekki az ma ejaze be khodes nemide kelke man be rasulullah imanam be rasulullah vaghti ke ma negah be nufus mikonim negah be adile quran va sunnat mikonim masalan rasulullah chizi mifarda hadith al bukhari darim miga yad khod ahlul janna be janna va yad کسی می میدن خدا که اهل بهش وارد بهش بشن بهش بشن اهل جهنم وارد جهنم بشن بعد خدا میگه که کسی که کوچکترین ذره ای از گندوم یا کوچکترین ذره ای از ایمان در قلبش باشه اون رو از آتش خارج بکنید کوچکترین ذره ای ایمان اگر ایمان که بو زیاد نمیشه چطوره که اینجا در این در این حدیث از ایمان به ذره مثال زده شده چرا ایمان گفته شده ذره پس ایمان ذره داره بزرگتر از ذره هم داره یا مثلا از اون چی که در حدیث تصحیه بخاری داریم بازم که رسول الله گفتن که من در خواب دیدم که اشخاصی در بهشتن بعضی ها خمیزهاشون تا شکمشون بعضی ها تا ساقشون بعضی ها در زمین میکشن مثل عمر رضی الله عنه که می شرمد دیدم که عمر تو پیراهن تو میکشنی کشان کشان میکشی در بهشت بعد عمر میفرماید رسول الله فما اول ذلك يا رسول الله كتاب الاشكال قال الدين دین ایمانش ایمانش زیادتر شد نشد بعضی افتادن پیش سینه شون بعضی افتادن پا شون ولی تا ساق پا شون و بعضی تو زمین میکشون نشد زیادتر شد این ایمان یا نشود این دین زیادتر شد زیادتر شد یا مثلا اون که در نزد ابو داوود داریم یا اول بخاری تمونج بکنیم در بخاری از در بخاری داریم در روایت از محمد ابن حنفیه بتركي محمد الحافي علي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه انك سالت ابي يعني علي بن طالب فقلت أي الاصحاب افضل بعد رسول الله حديث البخاري سؤالت يا علي بن ابي يا ابي اي الاصحاب افضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذومك الاصحاب برترن بعد رسول الله بهترن قال ابو بك قلت ثم من بس قلت من که گفتم که فقال عمر قال خدای من قال فخشيت ان يقول عثمان فقلت ثم انت فقال ما انا الا رجل من المسلمين الان اخو علی بن ابي طالب رضی الله چطور میدونه که اوغد بهتر بوده یا عمر بهتر بوده از خودش آیا غیر از بحیه آیا غیر از تحت ایمانه که با ایمان برتری پیدا کرده با مال اوغد بهتر شده با دنیا بهتر شده یا بحث ایمانه ان اكرمكم عند الله اتقاكم تقواس ايمانه ده حديث ديجر ده يندرى نزه ابو عبد الله رضي الله عنه وده صحيحه ازاد بن عمر كيمكيت كنا نفاضل بين اصحاب الرسول نفاضل تفاضل برشي اني يك از برشي فرقات في ايمان الله صلى الله عليه وسلم حي ده زمانه خود الرسول ميقول اول از سند تخريرها سيوني حس فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وفي روايه البخاري وكان رسول الله يسمعنا ولا ينكر ينكر عليه مش دي كما ما يغطي وانكاري هم برما لميكر بس ورد هذاين ادله بدالين درين نصوص خير ايمان بر دیگران، بر دیگر، بر اشخاص دیگری میتونم برطری پیدا بکنم. هر کدوم از ما میتونیم بهتر بشیم و ایمانمون رو تنگویت بکنیم و به خدا نزدیکتر بشیم. خب، بحث افتسنان رو میذاریم برای درست آینده. لیکن، حالا، حالا شاید در آینده یا بعد از آینده. حالا لیکن، حالا اون بطلبی که ما منتظرش بودیم، ما هستیم. که خیلی مهمه برای طالب علم و اونم این که ما دونیم ایمان مکم رو زیاد میشه حالا این ایمان با چی زیاد میشه با چی تقنیت میشه این مهمه طالب علم بودونه این همه مزیر اومدیم تا حالا ببینیم یک طالب علم سنی یک عالم سنی و یک مبتدع چقدر طرف دارن با هم وقتی که بحث رده بر علماء میشه، وقتی که علماء در جلوب عوام خورد میشن و بدی علماء گفته میشه، ببینیم کدام یک از علماء ربانی هستن و کدام یک ربانی نیستن. معیار عالم بودن در چیه؟ فرق عالم اصلی و غیر اصلی را بدونیم. ببینیم خداوند چطور از ما خواسته ایمانمون رو تنفیت بکنیم. اولا اولین چیزی که ما برای اون الان حلقه زدیم علم شرعی قویتون شاید لمس کرده باشید در قلب خودتون لمس کرده باشید در قلب خودتون این حلقات وقتی که درش هستید به خدا نزدیکترید یا نه؟ به خدا نزدیکترید این کلاس ها را یک ماه تعدیلش کنید ذئب میشید نمیشید ذئب میشید قوتمون از بین میره جرئتمون دینمون اصرارمون تذکرمون به یاد خود خداوند متعال دینش و رحمتش شرعش از خدا دور میشیم بس اولین چیزی که ما با اون میتونیم ایمانمون رو تقویت بکنیم این علم شرعیه et velik at deres du også henne som er verden? Er der da ikke ha atdømmer elekt 같? Tød er om dem ane God og støtTrans Andrew. 90- og det er når ethet! Getrede deres livelang ind, sød det ingen nye, flert gjernelle problemet. SL ifrige om om ­ Kl weilsefalen Außerdem, ok, offentlåg av Tanja. Ta og ind sker denSNen på her. Ta op i kaa توشیده که ما را والد اصلاح می کنه توشیده که ما از ارزاق قبل نجات می ده توشیده که ارسومیراتی در دنیا می گذاره که سبب اجرای حقوق خدابند و حقوق بندگان در میان خودشون میشه. شه توشید نباشه بندگی یهیست دیگه خدایی مطرح نبی شه دیگه پیانبران بیمعنا هستن توشید نباشه دیگه عدالت بیمعنا هستن توشید اصله و توشید برای اون رسولان پیغمبران فرستاد. و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشركوا الطاغوت. پس پیغمبرانم برای توحید فرستاده شده. بس اولی اولین واجب بر شخص مکلف توحید خدا بوده. اولین علمی که ما باید بدونیم چیه؟ توحید باری تعالی. و آخرین چیزی که ما باید با دنیا بریم چیه؟ توحید باری تعالی. رسول الله من در آخرین لحظات زندگی لعن الله یهودی و نصارا اتخذوا قبورهم قبرا بي اهم صادق توشید غمتو توشید رو در غمی اینکه مردم بیان در شرق گفتن بس توشید همه اول رسول الله و آخر رسول الله دنیاوت ببینیم ما در جامعه امروز خودمون چقدر از توشید بدوریم چقدر نظرو نیاز چقدر نمیدونیم پشت سحار و ساحرینو نمیدیدیم جادو المشرقي وقتی که کمرنگ بشه وقتی که انسان از خدا دور بشه خود به خود جای این علم شرعی جهل و جهالت و زلالات و گمراهی ها میگیره المشرقی که بخواد بیاد علمای قزوانی بیاد این مشکل حل میشه این گمراه ها دیگه اون معتزلی مجبور که بیاد به مسجد نماز بکنه مجبور که بیاد مسجد آباد بکنه مجبور که بیاد به پای صف جهاد بیسته جهاد بکنه نه این که ترسی باشه و باید بشه توی غونه. نه نه ما نمیتونیم خودتشان در ایمونا توپ توفنگ دارن. تانگ دارن و فلان دارن و به ترسه. توشید بسید انسان جرعت میده. ایمان ارزانا تقویت میکنه. تا جایی که یک مؤمن میتونه در مقابل ده تا کافر بیسته. کفت ترسه. بدعه ترس خیانت بدینه. و برمکنید نه در مقابل این عدلت و نه در مقابل این نوزت و در مقابل هیچ کدوم از اینها یک مبتدع یک کافر نمیتونه بیسته شکل قیافه یک مؤمن حقیق یک شیطان ببینه مثل عمر رو کج میکنه عمر وقتی که در دلیکنچه میرفت شیطان راهشو کج میکرد نمیتونه هیچ شیطان در مقابلش بیسته پس علم به انسان قدرت میده علم انسان ایمان میده علم اون ال مسیح صحیح است که خداوند نزدیکتر میکنه حالا اون مرجئه اون اشعریه اون معتزله محرومن از این ان ولیه اونهایی که صفات خداوند رو باطل کردن تعلیلش کردن تعویلش کردن تحریفش کردن خب چی دارن چی رو میپرستن خدایی که سگ باشه خب کسی که میگه خدا من همه جاست خب اون سگش خدا درست تک به درد چرا وقتی مسجد نماز میگه پس اون کسی که داره بوت می‌پرسه پس نیاتش هم درسته این مذهب ابن عربی این مذهب سروش این مذهب الهی قومشایی هر کسی خواست هر طوری می‌خواد عبادت بکنه عبادتش درسته آخرامچی دانشجو هست بیت شعر مولانا هم بیت میاره کجایی که چهار رکعت بودیدم قصه موسی و چوپان رو میاره بله داره وقت خدا داشت وقت خدا می‌کرد شما میگین این قصه رو قبول ندارید اون میگه که ای خدا کجایی که من حاضر نمی‌دونم شلون بکنم و فلان رو فلانت بکنم موسی همیت انکار میکنه بعد خداوند انکار میکنه بعد موسی اون میرا میپرسی حتیره که میخواد رو مرا بپرسه بپرسه چجوری جوری پرستش کردی چی میخواد بر اساس مولانا میخواد بگه های عبادت زیاده راه خدا زیاده در صورتی که در شرق ما راه شیطان زیاده راه خدا یکی ان از صراط مستقیما فتبعوا صراط یکی مستقیمه میکیه راه ها هزار طریق و هزار راه نمیشه راه خدا یکیه میشه شعار صوفی ها این خود تصوفه این اصل گمراهی و این قصه دروق بر نبیمان و رسولمان من موسیل علیه السلام با این قصه میخوان اینو بگن که بدعت حسنه در زین هست هرطوری طوری خواستی خدا رو عبادت بکن صوفی میاد زنا میکنه میگه نه این عبادته مشروب میخونه نه میگه بر من جایزه چرا؟ چون برای خودشون قصه های باطل گذاشتن. حالا ما با این معیارها میتونیم تشخیص بدیم با این معیار الهی شری میتونیم تشخیص بدیم که علمش حقیقی هست یا علمش حقیقی نیست کدوم بار حقیقت ظاهره ظهره قدیر نگاهو کنیم کدوم یک از ما موفق داریم؟ کدوم حزب و کدوم گروه کدوم دسته در ذروتشون موفق ترند در هدایتشون در عملشون در اخلاصشون کدوم یک بیشتر اخلاص دارن اون شخصی که داره حضر تشکیل میکنه و تشکیل میده و برای حضرش پول جمع میکنه و اون کسی نمیدنم تشکیل میشه برای نمیدونم فلان قضیه و فلان بهمان کدوم یک برای خدا داره کار میکنه همه اینها این رو اینه با رسید نکشی المشارعی برای خودش اساس و معیار و بند و بنودی داره دلیل اول بر بران چیزی که إيمان اور صحیح اس میکنه و وسیله برای تقویت الله تبارک و تعالی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واول العلم قائما بالقص علم شرعی ایمان رو تقنیت میکنه چطور؟ اولا خداوند اهل علم را در این آیه ذکر کرد ولی مفکرین و عقلا و فیلسفا رو نیورد اهل علم رو اوورد و علمم در علم شرعی واضحه وقتی که خداوند بگه علم یعنی اون وحیی که از طرف خودش رو او اوورده اهل علم اهل اون علمی که طرف خود خدا آمده پس اولا خداوند شخصیت میده اهمیت میده به علمان و خداوند از اونها دوبما خداوند از اونها به اسم علم یاد میکنه اصحاب علم علم علمی که ضد جهله و صفتی یک شخصی مثلا بگیم معالمه صفتی برتری داره بر کسانی که عالم نیستن پس خودعلم ارزش داره در رزه خداوند هلیسته و لدینه یعلمونه و لدینه لا یعلمون هیچ وقت آیا مصابین کسانی که میدونن و کسانی که نمیدونن هرگز خداوند در این آیه ثبت من خداوند در این آیه گواه میده شهادت میده بر شهادت اونها شاهد الله انه لا اله الا هو خداوند گواه میده بر وحدانیتش و گواه میده بر گواهی ملائکه و علما بر وحدانیت خداوند چه واقعه ما میتونیم بگیم فلان شخص شاهد یک شخصی از بیرون میاد میگه من دیدم فلان شخص دزدی کرد آیا میتونید بگید این شهادت دیگه این شاهد, شاهد قضیه از شهادتش مورد قبوله خیر تا اینکه ما ندونیم قسم نخوره که من با چشم خودم دیدم فلان شخص دزدی کرده قبولش نمیتونیم بکنیم این شهادته شهادت خداوند ما شکی درش نداریم که بر حق خداوند کمیع و بسیره لیکن الان ما ببینیم در این آیه چه خصوصی اومده شهادت خداوند اون گواه خداوند بر شهادت علما یعنی اون عالما علمایی که اومدن از حق خدا دفاع کردن اونها هستند که حق خدا را شناختن اونها هستند که, حق هستن که حقیقت الوهیت و غوبیت اسما و از ما صفات خدا دانستن خدا داره بر شهادت احل علم گواه میده حالا بعد ما بیام بگیم ابنباز درباریه البانی مرجعیه نمیدونم درباریه ما بعد ما بیام پامو رو تو کفش علما بذاریم حق بر علما بدیم این نهایت جهله که خداون بیاد گواه بده بر علم علما ما بیام بگیم که چی؟ علما خائنن علما جاسودن علما نمیدنم درباریهن علماء ترس هست خدا چطور میگی به خود اجازه میدید که اسم عالم رو روش بذاری و بعد بگی که چی؟ این علمایی که علم شرعی دارن علم نویدانم فقه و شریعت و قرآن و تفسیر دارن از شما ترسی ترند این علمی که خوندن چی کارشون کرده پس؟ این علمی که خوندن کجا بردنش؟ این علم در اونها تاثیر نگذاشته ماشاءالله در شما تأثیر گذاشت شما بدون علم ایمانتون و نه ترسیتون حوات قلبتون از علماء هم بیشتر شده به ما یاد بودید چی چیز ایمانتون رو قبیل کرده چی خوندید کجا خوندید بیشه که خوندید این شهادت خداونده خداوند ما اون چیزی که داریم جلوه خودمون اینه که گواه میده بر گواه علماء بر این اینکه چی؟ تنها شخص مستحق عبودیت فرستشه از جمله مسائلی که در این آیه نهفته هست در بحث علم خداوند گواه میده بر گواهشون بر بزرگترین ای که بر ما مکلفین موجبه بزرگترین خصوصیت و بزرگترین هدفی که برای اون پیانبران فرستاده شدن. چیه؟ عبادت. خداوند داره شهادت میده، گواه میده بر گواه اونها به اینکه که خداوند فقط مستحق قبوله. بر بزرگترین حق خودش داره چی؟ گواه اونها را قبول میکنه. خیلی مسئله بزرگیه. علم شرعی خیلی مسئله بزرگیه. که خداوند این این اهمیت بهش میده. پنجمه. خداوند قول العلم رو در رضبه ملایکه قرار میده. چقدر فضیلت البلاص که انسان با علمش به درجه فرشتگان برسه چقدر بالاست که خداوند ما را تأیید بکنه بگه شهادتتون قبوله چقدر بالاست که خداوند اسم گواهمون بر وحدت خداوند رو اسمش بذاره گواه شهادت چقدر بالاست که خداوند در قرآن از آنها به اسم اهل علم یاد بکنه اهل جهد خیلی بالاست مرتبه علم شرقی خداوند خیلی علم رو داره که در این آیه این بستش می کنه در این آیه اینشینین در رتبه ملاکی قرار روشون می از اونها بیاد اهل علم یاد می خیلی واقعاً ردبه به شرف بالایی هست که انسان رو تشفیخ می اهمیت بده به این علم خودش رو نجات بده هم ردبه علماء باشه اینما یخش الله من عباده العلماء بشه کسانی که از خدا می ترسن واقعا علما هستن اگر علما از خدا نترسن کی می ترسه؟ اگر علما ما نترس باشن از خداوند ما می ترسیم از خداوند خیلی مثلای مهمیه که انسان سعی و تلاش بکنه به خدا نزدیک بشه و این علم شرعی وسیله قرار بده برای از زیاد ایمانش دلیل دوم دو از جمله دلائل این که ایمان تقویت میشه با علم فرمودید الله جل شانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اولا خداوند گفت الذين اوتوا العلم علم اونهایی که داده شدند برسرشون دانشه از غیرشون از اصحاب جهل دوبار من اینه که خداوند دیگه ما اونهایی که ایمان آوردن را, را بالا میبریم و الگین اوت علم درجات علم و حیله که خدا ما را بالا ببره ایمان ما را قوی بکنه درجات ما را در بهش بالاتر ببره هم ایمانمون زیاد بشه هم سمره ای ایمانمون پس علم بزرگترین وسیله هست برای چیز غفعت بزرگی خودمارا بزرگ بدونه نه بندگان ما خودمارا در این آیه بذاریم ما خواستیم خدا رو را راضی بخونیم یا مردم خودمارا نگاه بکنیم و اون علمایی که در این مملکت در ذوره بر ما هستند برای خدا فتوا میدن یا برای مردم به خاطری که مردم فردا نگن وهابین یا فلانن اینا یا اینکه فقط از خدا میترسه و قول راضی نیست که بر قول خدا و رسولش قول دیگری تقدیم بکنه نمیخواد قول رسول الله را زیر پا بذاره رفعت خدا را میخوام رو رفعت مردم خود ما در نظر دیگیریم اگر علم شرعی ریم اگر ایمانی میخوام تقوییت بشه باید رفت خدا بخوام باید علم شرعی را بخوام باید اون چیزی را از خدا خواهم باشیم که با اون انبیاء بالا رفتن صحابه به با اون بالا رفتن علم شرعی علم شرعی و تنها یا بزرگترین وسیله یه هست که ما میتونیم در نزد خدا بزرگ بشیم به خدا ما را بزرگ بدونه نه مردم. دلیل ثبet فرموده خداvend اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا علما را ذکر می کنه منم به اسم ترس به اسم خشیت حتن که غیر از علما هم شاید ترس داشته باشن از خداvend و شاید تقوه داشته باشن لیکن تخصیص علما و ذکر و یاد علما دلیلی که بر دلیل بر اینکه علم وسیلیه است برای تقویت ایمان علم وسیلیه است که میتونه انسان با اون به خداوند نزدیک بشه چه بیشتر از این که این علم وسیلیه برای تصحیح عمل خداوند چی از ما قبول میکنه آیا هر عمل نیکی را از ما قبول میکنه یا آن نیکی که خودش نیکش دونسته را قبول میکنه شک درش نیست تنها نیکی را قبول میکنه که خودش نیکش دونسته و تنها عبادتی قبول میکنه که روی مبنای اساس علم شرعی باشه علم صحیح نبوی باشه اما عمل مردود خدافن فردو کردن ما را خواهد گرفت و خواهد گفت ا الله اجل لكم ام على الله تفسرون بما خدا بهتون اجازه ده چنين كاري بكنيد چنين عبادت يي رو بكنيد و چنين سفر رو انجام بينيد ا الله اجل لكم اين جه هاي كه عبورديد اين نميدونم عبادت هاي كه ساختيد از خودتون گذشتيد تشريعاتي كه عبورديد استانااتي استحسان هاي كه ميكنيد آيا خداوند بهتون اجازه ده يا اينكه دروغ بر خدا ميگيد ام على الله تفسرون بس علم که انسان میتونه به خدا نزدیک بشه با عمل صحیح با تصفیه علم صحیح با دعوت به سوی خدا من با ربك بالحکمه والموعظه الحسنه بالحکمه واشای محکم نه با گوتای حکمت نه اینا محکمیا بعدا فکر میکنن حکمت یعنی نه حکمت یعنی قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن أتبع دعوة ما هي بحيلة روية بينيشة روية علم السخيحة روية محكمة ما هي فلسفية عقلي منطقة عقلي فكره جمانه خياله تباهمه تباهمات اين فائده المشارعي اين ثمرية المشارعي كميتون ايمان من تقبيات بكونا وبذوقتر انجيز وبهتر انجيز ذا تقبيات ايمان دوب من جيز در تقریه ایمان تفکر در مخلوقاته تفکره که میتونه سکر انسان رو باز بکنه تفکره که به انسان عقل میده تفکره که قدوان در قرآن مدحش کرده و مخالفین عقل را مزمت شمرده و گفته در برای مجدیکی لای عقلون لای افقهون گفته عقل ندارن و فهم ندارن عقل و تفکر و فهم و نظر در مخلوقات خدا یکی از وسائل که ایمان تخلیت بشه انسان سری به آسمون بکنه ببینه خدا این کهکشان هایی که چرا بولد؟ این زمینی که یک میلیون بار کچکتر از پرشیده چند میلیون بار کچکتر از پرشیده مایی که در این زمین این ذریه ریز هستیم چی هستیم؟ چرا خداوند من عقل داد، فکر داد در همین شرع نگاه بکنیم در همین احراضی که ما بیخونیم این معجزاتی که در هست در همین قرآنی که ما ببینیم تفکر داشته باشید خداوند همینجوری نیورد پیانبران را همینجوری همینجور این نظر، این استدلال، این سنجش، این فکر ما در اون مخالفین داریم ما اهل سنت نظر و استدلال و فکر و تفکر را وسیله ای برای تقریب ایمان میدونیم و خداوندم در قران اون چیزی که از ما میخواد نظر و تفکر در مخلوقاته حالا این نظر و تفکر و این استدلال اولین چیزی است که ما باید داشته باشیم بدون اون مؤمن نمیشیم یا اینکه نه فقط وسیله برای تقویتی ایمان ما گفتیم چی میگیم وسیله برای تقویتی ایمان لیکن اشاعر اشعری ها گفتن نظر و استدلال اولین معجبت بر مکلف یعنی اولین چیزی است که انسان با اون مؤمن میشه و بدون آن انسان مؤمن نیست یعنی سوال بشیم از خودمون مصال بکنیم ما الان در نتون اوهر مسلمان هستیم نیستیم فکر نکنم یک کسی از این مسلمان ها مسلمان باقی بمونه. چون یک درصد این مسلمان هایی که ما داریم بعد از تکلپشون بعد از این که مکلف شدن نظر و اصلاح نداشتن. کدوم یک از ما نظر با نظر و اصلاح رفت فکر کرده شک کرده در مخلوقات بعد به خود را سیده؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَكُولُنَّ الله فطرته وقتی که فطرت آه بر بحیدانیت خدا میده وقتی که مشرکی اینی که نظر استدلال ندارن مشرکی که عقل و سنجش ندارن خدا را میشناسن چطوره که شما نظر و استدلال رو اولین واجب میدونید این همه علامت استفهام در جلو چشمان چشمهان اشعاره اشعاره برای نظر و استدلالشون یک طریقی مبتدعی, مبتدعی رو آوردن چی گفتن؟ گفتن یک شخصی که مکلف میشه باید نگاه بکنه نگاه به حرکات بکنه زمین دور خرشید میچرخه ماه دور زمین میچرخه حرکات دلالت بر حدوث میدن هر حد چیزی که حرکت میکنه هر چیزی که حرکت میکنه یه حادثه و هر حادثه ای دلیل بر محدثی میده منم دستم رو تکون دادم یک حدثی رخ داد نیاز داره که من باشم یک محدث کننده ای یک انجام دهندهی باشه نیاز به یک انجام دهنده داره آره این محدث میبونه که نیاز به یک محدثی دیگری باش داشته باشه یا نداشته باشه من نیازمند به کسی دیگر هستم یا نیستم اگر من نیاز به کسی دیگر دارم من مخلوقم و اگر نیاز به کسی ندارم دیگه خالق میشم این نظر نظر استدلال عقلی این تسلسل که انسان در تش... در تشکیک میاندازه حبا وقتی که اومدن گفتن یا رسول الله در دست مون سنگینی میکنه بعد از عقول که کفر و فلان چی بفرسه الله قل امانت گفتم منو به خدا ایمان آوردم این شک و شبهات رو بذار که حق چیه غیر از خدا کسی اومده دعای خدایی بکنه غیر از خدا ما به کسی دیگه نیاز داریم ما نیازمون کی برطرف میکنه غم دلمون کی میدونه خیلی از مسئله مهمی هست که متاسفانه این طریقه یه که هیچ وقت رسول الله به کار نبرده به هیچ وقت رسول الله بهش اصطناب نکرده ما متاسفانه میان بهش استدلال میکنیم النظر اشاعر نظر و استدلال نظر استدلال قرآنی نیست نظر استدلالشون قرآنی نیست نظر استدلال قرآنی تفکر در مخلوقات و قائنات است که انسان را به یقین برسونه که خداوند به انسان بگه که من متقنم من کارم با ادخانه من قدرت کامل رو دارم من فقط مستحق عبودیتم ما از نصوص چین میفهمیم اما اونها نه اونها فقط ای که تو باید مؤمن بشین همون طریقه خودشون حادث و مستدت و تا آخر اینها هدفشون چاره من اینها هدفشون از نظر استدلال نظر و استدلال اینی که ما فقط اثبات بکنیم که خداوند ثانئه آفریننده هست. آیا خداوند از ما از نظر استدلال خواسته که ما فقط بگیم خداوند خالق و رازقه یا این اینکه سراسر این از ما خواسته خواسته از مون اما قرار خلق جن و انس الا ليعبدون خاصه او را فقط بپرستیم و عبادت بکنیم توحید الوهیت را خاصه ربوبیت اولویت یک وسیله رو قرار داده ولی متأسفانه اونها اصل قرار دادن اصل خیرنا اصل نیست این خود نظر استدلال در نظر شاعر مخالفات زیادی داره از جمله پنج مسئله که میشه انتقاد کرد انکار از معصفات از معصفات فعالی خداوند و تشکیک در خود خدرت خداوند و امور دیگری که در این مخالفات هست پس نظر و استدلال در نزد ما وسیلی برای زیاد ایمان سخیبیت ایمان ولی در نزد اشاعره وسیلی برای تشکیک در ایمانه پس نظر و استلاد در نزد ما وسیله برای تقویت ایمان و برای اینکه ما می‌دونیم خداوند فقط مستحق عبودیت است و به خاطر همین است که خداوند به این مخلوقات قسم می‌خوره و تینه و زیتونه و الفجر به این مخلوقات خودش قسم می‌خوره و شمس و ضحا به این مخلوقاتش قسم می‌خوره قسم نه بخاطر خاطر اینکه به ما برات خودش خالقه بلکه به خاطر اینکه خودش فقط مستحق عبودیت خب این خلاصه بحث نظر افلان میمونه مسائل دیگری که میتونه این ما رو تخفیف میکنه میذاریم برای جلسه های آینده سبحان الله سبحان الله حلقه است و سلام علیکم